خیلی از افرادی که دنبال اصول هپنوتیزی و یادگیری اونها هستند یا توی کلاس های ثبت نام میکنن و موارد این رو دنبال میکنن آدمایی هستند که شد یه نگرش اینطور روم یه تمایلی دارند به اینکه بقیه رو کنترل کنند ذهنشون رو تحت تاثیر قرار بدن و ماین کنترل دارک کیبنوس و این اینجوری و حتی مقالات اینجوری رو خیلی دنبال میکنند و با این هدف حصولا دنبال میکنند و حتی توی سوالایی که میپرسند میگن مثلا چجوری روی فلان دختر اثر بذارم که با من وارد رابطه بشه چجوری مثلا فلان تأثیر رو روی یکی از نزدیکانم بذارم که باید فلان موضوعانه بشه خب یه هدف اینجوری وجود داره و با وجود اینکه شما آزاد هستید که چه استفاده ای خواهید از اون علومی که مد نظرشون بکنید و اینها ولی به دقت کنید هر نوع استفاده ای هر نوع نگرشی به این موضوعات سطح انرژی و کارما و اون ساختار خاص خودش رو داره یعنی وقتی شما میخواهید یه نفر رو با هدف سوء استفاده یا دستکاری کردن ذهنش و اینها تحت تاثیر قرار بدید در اصل دارید از قدرت خودتون کم میکنید یعنی این نیاز به تغییر دیگران باعث میشه که به شکل معکوسی از شما کمتر بشه چون که یه مقدار داره از اون صلاحیت شما میکاهه کم میکنه و شما در واقع دارید یه جورایی سعی میکنید که مصنوعی باشید یعنی این دقیقا چیزی که از قدرت شما کم میکنه و رو همین حساب میخوام بگم که قوی ترین نوع ارتباط هیبنوتیزمی ارتباطی هست که خیلی صلاحیت و قدرتمند باشه نه اینکه با انگیزه های خیلی سطحی و پایین باشه و اگه می یک خیلی تأثیر گذار و خوب بشید و اصولا رفتارتون همواره هیبنوتیزمی باشه توصیه این هست که درجهت انگیزه های خیلی سطح بالاتر فرکانس های بالاتر و اینها باشید و سعی کنید دور باشید از این فضای دستکاری ذهن دیگران و موارد مشابه